جالبه که بعضی از افرادی که همین الان توی کلاس هیبنوتیزم هستن خلصم اونهایی که یه ذره عجولن یه ذره عجله دارن میگن خب چه گیری دادی به این بحث های پایه زود بریم سراغ تکنیک های جالب و, خاص و این و و آگاه نیستن که همین پایه مهمترین بخش داستانه و کسی که در واقع این پایه رو نمیدونه بعدن در استفاده از هر تکنیک دیگه این محدود خواهد شد پایتون هر چقدر قوی تر باشه توی ایبنوتیز از اون طرف شما بهتر میتونید تکنیک های خیلی پیشرفتر اجرا کنید دیگه بقیه کار یه خول ریزه واقعا کار خاصی نمیشه یکی از این حرفهایی که میخوام تکرار کنم اینه ببینید همین الان هر چیزی که حس می کنید واقعی و حقیقت این فقط بر براساس سطح اوشیاری فعلی فقط و فقط بر اساس باورهایی که برای مطلقنده که الان تو ذهنتون تزریق شده و در واقع خیلی خوب باید شما یاد بگیرید که تو هر لحظه زندگیتون هر چیزی که حس می کنید درسته هر تحلیلی که دارید می‌کنید رو بیدار شید و آگاه شید که من دارم دوباره بر خودم توی تونل واقعیت که گیرفتادم نگاه می به همه چیز. و سری باور محتوانده دارم و چون حقیقتی نیست حالا آگاه میشید با از اون بیرون میاد و بعد به امان هیبنوتیزور اون چیزی رو عملی میکنید که خودتون دوست دارید عملی بشه تا زمانی که شما هر حسی دارید هر فکری دارید هر محدودیت که میبینید رو باور میکنید غیر ممکنه که بتونید کار دیگه رو رقم بزنید و مثلا جالب من یه مثال میذارم یکی بود اون روز می خب ما اصلم باید تو زندگی بر خیلی چیزها تلاش کنیم و این بدیهیه و اصلا شخصیت این آدم توی عرفش واضح بود با تلاش کردن شکل گرفته بود. و بعد من بهشون گفتم که به هیچ عنوان اینطور نیست این یعنی خود این هم یه باور تو ذهن شماست که اوکی من تو زندگی برای هر چیزی باید تلاش کنم و این باور متاسفانه دارن نورده رنج گنج و اثر نمی شود و در فرهنگ ماش تطی تزریق می کنه به افراد، و مثالی رو بهشون زدم، گفتم شما میری و پای کوه وای میسید یه قاشق میگیری دستت بعد میکنی بعد دوباره میبینی که تموم نشد این کوه بعد میخوا من باید صبر و تلاش کنم، همش باید تلاش کنم، همش باید تلاش کنم و بس اینی که اصلا خود اونی پارادایم یه چارچوبی که شما دوباره دوش گیر افتادید نیازی نیست کوه رو با قاشق بکنید ابزاری بهتری هستند، فقط باید از این باوره اول بیرون بیایید، فکر نکنید اون چیزی که فکر میکنید، اون چیزی که الان دارید میگید خب من باید تلاش کنم و این خیلی منطقیه، فکر نکنید چیزهایی که منطقیه و براتون واقعی به نظر میرسه حقیقت محصه بلکه میتونید چشمتون رو بیشتر باز کنید و به حقیق دیگه هم آگاه بشید